خوشنوری اهورا مزده خداوند جان و خرد و با درود بر روان و فروهر قشوزر تشت اسپنتمان و با درود بر همه میکان و بهان هفت کشور و با درود گمت به همه شما گرامیان همیهنان هم زبانان هم اندیشان همکیشان دانش رویان دانش پجروهان همینگی خوش آمدید و شادمانیم که روزی دیگر و قصینی دیگر و شبیه دیگر در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه شمبه ارمز روز و آزر ماه هزار و هفت و پنجاه امروز در آبان هستیم، 25 آبان ماه ولی از دیدگاه راه نمای آغاز آذرمان هست و روز او بست 15 نواممبر ۲ دوده تسایه برای روز قیمان داده بودم که در مورد نیایشا گزارشی براتون داشته باشم پس این هفته نیایش است هفته پیش به گستدگی بیشتر گفتم ولی اینجا هم جا دارد تا یک بار دیگر بگویم که برای نیایش کردن میشه گفت که همه عوستا در دست رست هست و از جمعه ها تا خود عوستا و البته دیگر بخش های عوستا جای خود رو دارن. و هر کس هر بهدین خود می‌تونه برگزینه که چه بخوانه و چه نخوانه از سوی سنت و سپارش بر اون هست که بر اون است بخش که حوسته‌های آیسته نام داره در کنفه‌ها به خود حوسته‌های گنوان نیایش‌های روزانه و همونگونی که گفته شد این بخش در بردارنده، عشموهو یا فرانویشت، اهونور یا یتاهو، سروشواژ حوستای کشتی، پیمان دین، ستایش یکتا خدا، تندرستی، صدوی نام خدا و برسات هست. که در هر قرده حوستایی که باشه این نیایش این در آغاز اومدند پس از اینها معمولا ترتیب دیگر بخش ها بدیم است که نخست گاه ها یعنی پنجگاه به گونه جداگانه و کامل آورده شدن سپس نیایش ها میاد یعنی اونایی که خورشید نیایش، مهر نیایش، ماه، آتش و آب نیایش هستند یه آب سور. در ادامه یشت ها میان که هرمز یشت، پردی بهشت یشت، سروش یاشت شب، سروش یشت هفت دنگه که یعنی همون هفت هات، هفت هات در میان ها جای داده شدن که در اینجا صورت جداگانه در خوردرمیسته آورده شدن و سپس رهرام رامیشت است پس از یشت ها آفرینگان ها داریم که آفرینگان گهنبار و آفرینگان دهمان هستند سپس کرده سروش است همازور دهمان، همازور فروردینگان آفرینگان های پنجه بزرگ و کوچک که این پنجه ها مال آخر سال هست و سرانجام هم یک رستا به نام پت و دردگان که برای درگذشتگان میک ما در اینجا تنها به آنچه که رستا های باسته خواده میشن از وکتتاب رستا خود دررستان خواهیم پرداخت من. دانه به داره بخش به میرم جلو و هم در واقع یک تحریف کوچکی ازش میکنم بدون اینکه البته به چون معنای واجب واجب واجب وارد بشم ولی امروز عوستایی شو میگم البته همونجایی که در پیش هم گفتم دست کم ما دو تا تانمای ایرانی داریم در جاهای دیگه هم البته هستم ولی از کاریاش شامون تا آردمای انجمن موبدان هست که البته در این چند روز گذشته من چند بار نگاه کردم بهش اون بخش خورده که با آقای زیبای موبد فیروزگری هست باز نمیشه، نمیدونه حالا مشکلی داره اونم آمیدوارم که برطرف بشه و همچنین گفتم تا نمای موبد کروش میکنام هست که ایشون هم یک سری از نیایش رو خوندن و اونجا گذاشتن خب بسیار هم زیباست کاری که من میکنم امشب اینه که اینها رو یه خود آرامتر واضحتر میگم برای کسایی که میخوان یاد بگیرن یا گوش بدن و به هر حال این بیادگار خواهند باز و برشم تکرار میشه اینها هم در من روی تارنمای خودم هم دانه به خواهم گذاشت برای کسایی که میخوان بهش برگردند و خوش کنن من دو تا الان خوردهوستا جلوم هست البته گفتم خوردهوستای موبد اردشی آزدگوشه هست کجا آگاه خود رو داره من از روی خوردهوستای موبد رشید شهر پیش خواهم رفت با این توضیح هم بدم که این خود در رسای موبه مردان هم دو دو چاپ داره یکی چاپ نخستش که برگردان فارسیش از آقای دکتر حسین وحیدی هست و پستر یک دانه دیگر به چاپ بسید که این یکی رو موبه مهربان فیروزگری روش نگاهی کردند و همچون که روی خود کتاب اومده تصحیح و تطبیق کردند و برگردان این یکی هم به جای های دکتر حسین وحیدی از نوبه رستن وحیدی است. که گفتم من اکنون به برگردانش نمی چون بسیار طولانی خواهد شد زمان خواهد بود و اون یک چیز دیگه ای رو یک نشسته دیگه ای بسیار خوب اگر بخواب این آغاز کنم از صدویک نام خدا آغاز میشه این کتاب نخص صدویک نام خدا رو اینها رو دانه بدانه دانه براتون میگم آغاز نیایشای خورده وستایی هم با به نام ارمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان هست نام ها به دین گونه هست یزد هر ویزب توان هر آگاه هر خدای عبد عوی انجام بونست فراختند جمق پرزتر توم افی عبرابند پرونده ان آیا هم آیا آدرو، گیرا، آچینگ، چیمنا، سپینا، آبزا، ناشا، پرورا، آجینا، آجین آجینا، آن آجینا، خراشید تون، می واسنا هر بیس تو پاس هر همیت هر نکفر بیشکرنا، اشکر ترونیس اناوشک فرشک قزوحات خاور اوخشایا یا ابرزا رخو ورون افریپه اوفریپته ازبی کام فرمانکام فرمان کام ایختن افرموش همارنا شنایا اترس ابیش افراز دون همچون مینوستیگر امینو گر آذر نهب آذر آزر نمگر باد آزر باد نمگر باد گل گر بات گیرد توم آزر کبریت توم بات گر جای. آب توم جل آزرگر گل باعث گر نمگر گرگر گروگر گرآ گرآ گرگر آگرآ گر, گر. آگرآ گرگر اگومن گر. اجمن اخوان آموزد هوشیار فشوتنا پتمانی پیروز گر خداوند اهور مزده ابرین کوهن توان، ابرین نو توان، وسپان وسپار خوابر اهو ابخشیدار داتار رایومند خروهمند داور کرفگر بوختار فرشوگر این حال چیزی است که صد یک نام خدا ناور هست پس از صد یک نام خدا خب اشل بو میاد در این کتاب فرامون یشت بالا نوشته شده که همون پیرامون یشت است بدین معنا که اینها یشت ها یا نیایش هایی هستند اشل بو و البته یتاهو که در پیرامون دیگر نیایش ها بارها بارها به شیوای گنابین تکرار میشن برمی خاطر نامش بذاشتن پیرامونیشت یا پیرامونیشت عشم بقو و هیشتم هستی اوشتا هستی اوشتا احمایی هیت اشای و هیشتای عشم سپس اهو نور رو داریم یا همون یتا اهو یتا اهو و ایریو اتارتوش اشاد چیت خچا ونگ هی اوش دزدا مننگ ہو شیعوت نانام انگ هی اوش مزدای خشت رمچا یم دریگوبیوم ددت واسداره خب پس از این دو ما سروش داریم در مورد سروش که بارهای پیش به شیوهای بونالکون گفتم اگه بخوام بگیم آوای درون سروش آن چیزیست که از درون تاریکی مام می دهد به روشنایی اگر بخوا بینیم و سروش همواره نگاهبان جان در, در تاریکی هاست یا در برخی جاها به نام فرمان های خدایی شنبایی خدایی و اینها آمده است بر روی آغازگره میش گفتش که وابستا پس از اینا که گفتم سروش باشش است در سروشواش، در آغازش، پس از یکی مقدمه هایی که همجا هسته در همه عویسته ها هست به گاه ها پرداخته، گاه ها رو فقط یکی دو بند از هر گاهی در این سروشواش اومده در هاونگاه برای خودش که من وقتی که دونه دونه هاونو, مثلا هاونو میگم، بعد میگم از چی سخن میگه در این, در این کوتاه هایی که در سلوشواج اومده اگر نه خود گاه ها خب خیلی طولانی تر است، بیشتر هست اون اگر نیاز می شد در آینده بش خواهیم پرداختیم و روی سلوشواج اینجوری آواز می شه و درون اون آمده سه بار خاندن هر جا که چنین چیزهایی که میاد دوبار خاندن سه بار خاندن تکرار میشه اینجا آشن باهوخانده میشه سه بار تکرار میشه. سپس یکی از که تو خدی از نیاشا آغازگر هست میگوید فرavarane مزدیاسنو زرتوشت ریش وی دیوو احورا تکایشو. این فرavarane ما دروستا دو گونه فرآورانه داریم اینو بهش میگیم فرآورانه کوتاه. یه فرآورانه هم داریم که دروستای کشتی میاد پس از کشتی بستن و گره زدن که بعد فرآورانه بلند میگیم فرآورانه یعنی فرا میپذیرم باور دارم فرا میپذیرم دین زرتشتی مزدیستی را وی دعه که پاد خدایان پنداری است رد می کند اهور تکشو و اهورایی کیش است سپس گاه هاون میاد گفتیم گاه ها یکی یکی میان و فقط از هر گاهی دو بندش میاد در گاه خاون به ساونی یا میشه گفت روستا در این گاه ها چنین هست که در هر گاهی به یک بخشی از هازمان جامعه درود فرستاده میشه خوشنودیشون رو میخوایم که به ترتیب از کوچکترین یگان هازمان که خب خانه از خانه و خانمان هست که اونو در اوشهنگاه داریم در گاه هاون ویس میاد یا میتونیم بگیم روستا به روستا و روستابان درود فرستاده میشه و در گاه بعدی به شهر بعد میاد کشور و بعد میاد به سراغ واحده بزرگتر یک آنه بزرگتر درگاه هاون چنین آمده هاونه اشعونه اشهه ردوه یسنایی چه وخمایی چه خشنافرایی چه فراسسته یقیه چه ساونگهه ویسیه اشه رتو یسناریچه وهمآییچه خشناوت رایچه فرس هسته ی اچه نیم یا نیمروز یاگاه رپیت وین چنین خوندیش رپیت وینای اشونه اشه رتو یسنایچه وهمآییچه خشناوت رایچه فرس هسته فرادت فشب زنتو مایی چه اشعون اشعه رتو یستایی چه فهمایی چه فشناترایی در اینجا به زنتو ما زنتو ما یا زندو که میتونیم بگیم یک یگانه بزرگتر مانند شهر به اون درود فرستاده بشیم درگاه ازیرین خوزایی نایی اشانه اشیرات به یاس نایچه بهمایچه خشناوترایچه فراسستایچه فرادت ویرای دخیو ماچه اشانه اشیرات به یاس نایچه بهمایچه خشناوترایچه فراسستایچه در اینجا به دخیو دخیو یا دخیو یعنی کشور البته این واژه دهیو که ده شده ولی این دهیو به راستی کشور هست و به کشور و به کشور باری درود فرستاده میشه در شب گاه عیبی سرطر عیبی سرطر مایی عیبی گیایی اشعون اشعه چه شناو رایچه یچه فراسسته یایچه فرادت ویسپای ته زرادوش روت ما یچه آشاآونه آشه رات به یسنا یچه وحنا که در اینجا به زرادوش روت ما یعنی ما نه یا بخوایم بگییم راهبر دینی درود فرستاده میشه و دینان درود فرستاده میشه که همه رو در بر میگیره در اینجا در پایان اوشهینگاه اومد او شهینایی ازش عاش عقطت به ی نایی چ و ح چشنی چ ترست یع چ بردج یاای نمای یاای که آشانی آشیرت فی یسناای که وحماای که شناوچای که در اش هم هوش از نیم شبه تا پگاه براساسی اش باجی اش چون اصلا از روشنایی میاد بگونه ای میشه گفت پگاهی یعنی اون زمانی که نور آفداب آمده ولی خود آفراک رو هنوز نمی بینیم میشه گفت که اوشهن راستی مال اونجا هست به گونه ای اونای که میگن آغازگر اوشهن هست از این دیفگاه درست است چون میشه گفت پگاه خب اونای که صبح زود پگاه بیدار می و به کار و کوشش می و ببینیشه اینکه در این اوشهن به نمانه یا به خانه و کدبان و کدبانو درود فرستاده میشه و آوازگره هست خب این گاه های که میاد پس از اون تیکیه که بعد میخونم براتون در مورد سروش و از سروش طور یاری خواسته شده سروشه اشیهه تخمه هی، تن منتره درشید روش آهوگریه اشناد را یسنایچا، بهمایچا، کشناترایچا، فراسستا یایچا. یتا اهو بایریو زاوتا فرا ممروته. حطارتوش اشاد چیدهچا فرا اشادا ویزوا مروده. اهونم و ایرم تنم آهونم ویریم تنون پایتی یتاله ویری و تارتوش شادیتچه و انگهیش تصداد منگه و شیلترانه هیش مزداي شترمچه آهورایا یم دریگو بیوددت واسداره. ول دامی یک بخشی داری بنامید کم نام مزدا که از قطعه آمد. میگویم کمنا مزدا مبعیت پایوم دادات هیت ما درگبا دیدرشتا ای ننگه انیم تواهمات آترست شا مننگ حست شا یا شیوتنایش اشم تروشتا اهورا تام موی دانستوانای فراووچ که ورترهم جاتوا پoی سینگها یوی هنتی چیتراموی دام اهومبiش رáتون چیژدی ات هوی وهو سراوشو جمتو مننگ ها مزدا احمایی یحمایی وشی که احمایی پاتانو پا تانو دبیشی انتت پیری مزداست چه آرمیتیش چه سپنتست چه نس دی بیدروش نس دی و نسی دیو و تی اپا دروش نسی اپا دروش دوارا اپا دروش وی نسی اپا خزر ما نسیه مامرن چینیش گیتا است و ایتیش اشه نمس چا یا آرمیتیش ایجا چا. نمست چا یا آر میتیش جا چا نمست چا یا آر میتیش جا چا یتا رو دوبار خوندن اینجا به یسنمچه میرسیم جایی هست که اگر ما کشتی به داریم در اینجا کشتی رو باز میکنیم آرام آرام تا پس از پایان این بخش به عوضای کشتی که رسیدیم کشتیمون رو نو کنیم چنین است یسنم چه وحمم چه آو جست چه زبره چه آفری نامی سراوشه هه اشیه هه تاخمه هه، تانو مانتره درشی دراش آهوریه هه اشم بهو و اشتمستی اشتاو استی اشتاو احمایی هیدشای در ادامه بخشی میاد که با واجگان احمای چه آغاز باشه این احمای رشته به گونه یک نیایش تندرستی خواستنه به, به زبان عرستایی چون ما تندرستی که در سپس میخونیم اون بیشتر به پازند هست به زبان امروز ما نزید داره این چنین هست احمای رعش چه خوار نسچه احمای تن و دروتاتم احمایی تن و وزدوری احمایی تن و رترم احمایی ایشتیم پورش خواتران احمایی آسنام چیت فرزاینتیم احمایی درقام درق جیتیم جی تیم احمائی و هشتم اهون اشاونام راو چنگ ریس بو خاطرم اشم بو هید بار حزنگرم به با زنام به ایور به ایش زنام حزنگرم به زنام به ایور زنام هزنگرم بایش زنام آن، باییباییش زنام آن، اسهم و هویج با. چسا مه آب انگه مزدا، چسا مه آب انگه مزدا، چسا مزدا. هو تاشته هو راوزه ذرت راکنه. احور زادته و نین تیازچه او پرطاتو تواشه خضاته زربانه اکرنه زربانه در خضاته عشم بغو یک بار زدن نسوش زدار دیب و دروج پاکیتن اشوی روان قیش زدن نسوش زدار دی و درود پاکیت ان اشو روان خیش نسوش دی و درود پاکیت ان روان خیش اشنبه وایش تمسد حوشت آسی خب از سامانگر گرامی درخواست میکنم اگر موزیکی هست ما را مهمان کنند تا سپس ما باوستای کشتی برسیم و ادامه بدیم دیدیم به عوستای کشتی که در خورد به نام عوستای کشتی افزون آمده است به نام اور مزد وخشاینده بخشایشگر مهربان حومت و حوخت و حوشت منشنی بو گوشنی بو کنشنی بو روانیو گیتیو مینو عجش همه گونه وناهی عباخشو پشیمان پی پتت هم عج هر جسته و گفته و کرده و منیده و شنیده و پرموده عجش همه گونا وناهی عواخش و پشیمان په پتت هم شکست اهریمن باد شکست اهریمن باد شکست اهریمن باد شکسته شکست و زده باد گناه مینوی دروند اوا هما دیوان و در و جادویان گرسته که تار دوزخ نگونه و نگونسار مرد بن هیچ کارشان به کامه نبود هر کار و کرفه اشویی که بود به کامه ارم از خدا و امشاسپندان پیروزگر هست و بودش به کامه باد دینه پاکه اورمزد مس و وحو پیروزگر باد دادار اورمزد رایومند خروه مند هر بیست آگاه شناوتر را اهو راه مزدا تروی دیتی انگ راه مینی اوش هیتیا ورشتام هیت وصنا فرشوتمم ستاو اشم خشنات را اهو را همزدار بر اینجا یک بار اشم بهو خانده میشه دوبار یتا اهو خانده میشه میدانید که در رنگام خاندن این دوبار یتا اهو دو گره کشتی زده میشه در پیش سپس یک بار اشمو و خوانده میشه و دو گره پشت زده میشه. پس از اینکه کشتی بسته شد اون فرورانه بزرگ که گفتم در اینجا خوانده میشه. برین این گونه. احمی یاسنو اهمی. مازدا یاسنو زراتوشتریش. از تو تاس چا، آستوی حوماتم منو، آستوی هوختم وچو، آستوی لایشتم شیاطینو، آستوی دنیام ونگوهیم ماز دیاستم، فر سپایل نیزاس نی تیشن خید و دتام اشعونیم یا هایی تینامچا بوش یه این تینامچا مزیشتاچا وحیشتاچا سرشتاچا یا آهوی رش اهورایی مرز دای ویز چی نهمی آیشا هستی در این یا مازدا یسنویش اوستویتش چاسمه آوائیں که مزدا چاسمه آوائیں مزدا چاسمه آوائیں مزدا الله هو تاشتہ ہو روضہ ہے تیازچه نہ ہے اہو رضا دہ و نا این تیاس چہ او خدا تہ زروان ہے اکھرا درغو خدا تہ اشم وہ یک بار در اینجا اون بخش همازور بین میاد همازور بین، همازور هماشو بیم همازور ویش کرفه بیم هم کرفه کرفکاران بیم دورش وناه و وناهکاران بین، هم کرفه بست کشتیانو. نیکان و وحان هفت کشور زمین بی، به سر گزر چین چینوت بزرگ سبک و خورم و شاد و آسان ود وارنی یا دادار اورمزد نزد او آن فشون اخوان اشوان روشن گروث مان هما خاره مان اور رساب یا دادار اورمست ماست. اشم و پیروز باد خروج ابیجا وحدیه ماز دیاستان. پیروز باد خروج ابیجا وحدیه ماز پیروز باد خروج ابیجا وحدیه مازدی است نان. شم به خودش تماستی، اشتاشی، اشتاه مایه دشایی و هشتایی و پاور مازدو، امشاس پندان، کامباد، ایدون باد، ایدون ترج باد. شم به خودش تماستی، اشتاشی، اشتاه اشتا مایه دشایی و هشتایی بسیار خوب. فردا گی بخوام به ترتیب پیش برم. پس از این عرصتای عرصتا برساد اومده عرصت معمولا برساد رو در پایان میشه خواند که من این رو میذارم در پایان بکنم سپس ما ستاگش یک تا خداوند رو داریم و پس از اون هم درستی هست و سپس پیمان دید. خب حال من چون پیمان دادم این ها رو هم براتون میخونم تا کامل شده باشه ستایش یکتا خداوند به این گونه است که نام و ستایش اوی همی بود و همی هست و همی بید ایزد سپنتا مینو اندرج مینوان مینو خودش یک نام اورمزدج خدای مهست داناب و داتار و پرورتار پانب و خواور و کرفگر عوخشیدار و عویجه وحی دادستانی همازور سپاس اوی بزرگ هستیگان که آفرید و داد پخیشه هما بود زور دانایه عورتر تر بندن عود وست یزدان روشن بهشت گروثمان گرد آسمان خور تاوا ماه بامی ستر وست تخمه باد اندربا آتش و آب و زمین و ارور و اوسفند و ایوخشست و مردم گزشن و نیایش اوی خدای کرفگر کشمه کرد از هر گیتی دهشنان مردم پگویا یبو دیرو داد اوی شهریاره انبام و راجانی دامان پ رازمو ایو زشنو دیوان نماج اوی وس آگاه خاور کش پرستید، پیشت، فروهر زرتشت سپندمان آخشت اوی دامان دیندانش و ویروشت آسنه خردی و گوش و سرود خردی و که و راینی داره وصف، هستان و بودان و بیدان و فراهنگان فراهنگ مانترسپند که بیر روان پل بوخدار اج دوزخ و ودارتار اوی آنفشون اخوان هشوانه روشن حوبویه هماخاره و نیکه په فرمان تو خاور، په فرمان تو خاور، په فرمان تو خاور. پذیرم و منم و گوهم و ورزم په دین وحی عویجه. استوانم په هر کرفه اواغشم از بزه. ابیژه دارم خدای آس و پهریزشن و پاک شش ازران گان کنشن و گوشن و منشن و ویر هوش و خرد پکام تو توان سامانها کنم آنت پرستش په و منشنه و قوشنه و ورزشنه وشم په راه روشن کم نرسد گران پزد دوزخو و دیرم په چین پل رسم اوی آن مان بهشت پربوی هر وز فیسید هماخاره ستایش بوی ابخشیدار خدا که کام کرفه پاداش کناد فرمای فرمان را یعنی داران هفتن بوجید دروندانج اجدوزخ عویجه ها وینارید وسپ دامان اشعانه اشم بهو و هشتماستی اشتا هستی اشتا احمایی هید اشعایی و اشتایی اشم سه بارم میگیم پیروز باد خروح عویجه و دین مازدی اصنان. و یک بار هم اشم بهو این هم ستایش یکتا خداقان بود برای کسانی که رخواست کردند و میخواستند که یک بار نور درستی گولیشش رو بشنوه خب تندرستی رو هم میخونم براتون تندرستی هم که بیشتر به پازند هست این در بسیاری از آین ها و مراسم چه ستکوشی، چه گواهگیری در پایانش معمولا خوانده میشه و هر کس هم میتونه برای خودش بخونه برای دیگری بخونه آرسوی آر تندرستیست بسیار هم نیکست میگوید ارمزد پناه با دیر زیوشنی شاد باد و یک بار یتا حورم کنیم تندرستی دیر زیوشنی خر ننگ هد اشوی دار یزدان مینبان و یزدان گیتیان و همشاسپندان میزد میزده روشن هم برساد این دودمان شاد باد آفرین باد همه اندرکسان را زرتشت دین شاد باد ایدون باد خواهان باد اورمزد خدا را همه انجمن را دین زراتشتی را همه بهدینان را تن درستی زندگانی تن درستی فراخ روزی تن درستی شادی و رامشنی تندرستی در اینجا میتونیم نام ببریم ها کسی بخواییم تن این و آن را یا خانواده را یا خود را هر که دوست دارید زندگانی دراز باد دیر بدار شاد بدار تندرست بدار ایدون بدار بر سر ارزانیان بدار سالهای بسیار روزهای بیشمار جاوید و پاینده بدار صد هزاران هزار آفرین باد سال خجسته باد روز فرخ باد ماه فرخونده باد چندین سال چندین روز چندین ماه بسیار سال ارزانی دار یه زشن و نیایش رادی بود زور و برشنه عشویی دار اول همه کار کرفه ها باد رادی باد نیکی باد خوبی باد ایدون باد ایدون ترج باد تور شاست بندن کامه باد عشونه اشم بهو و اشتمستی اوشتا هستی اوشتا همایی یدشایی و اشم این هم از تندرستی پیمان دین هم یک دخش کوچکی است که این پیمان دین هم به این گونه درست شده که پس از به سرا سج پوشی این پیمان دین میتونه گفته بشه از سوی کسی که سج پوش شده که البته اون فرورانه بلند رو که ما در خود عوستای کشتی داریم که پس از گره زدن کشتی بس خونده میشه اون خودش به راستی پیمان دین هست و پیمان دینی به زبان است. این هم بهش افزون شده که یک در از گاتاهایی عوستایی و پازند به دینگونه است. رزشتیا چیستیا مزدداتیا عشونیا دعنیا ونگ هویا ماض دیگر ایش دین بهی راست و درست که خدا بر مردم درستاده این از که شوز زرتشته پیامبر آورده است دین دین اورماز داده زرتشش اشلونه اشنبوهو یک پاره شده ورخوندنش دادار یک دین بهی یک پیغمبر پاک راه هشوزرددشت مهرس پنتمان انوشروان دانستب و بیگمان راسته و درسته دین پاک ارمزد هشعون هشنبهو یک بار ویسپ ستایش دادار ارمزد رایونند خروه مند هر دانای توانای، توانکردار، طبان کردار آمورزی دار کردار هفتم شاه شاهان شاه ره را فیروزگر درشتار دشمنزدار امای پوتاشته برساد و یک هم هشم به خود نمیشه دارم خب تمام. حرسای بایست خونده شد و اینجا من به رو میخوانم که بهش پایان داده باشم بعد یک نصیبی روش می بعد اگر پرسشایی بود که در پیوند بود با چی گفته شد پاسخ خوا... داده خواهد شد حرساد چنین گونه است به رساد و به پذیراد و بنیوشاد. دادار ارمزد پسند یزدان باد هیاره وحن رساد به خوشنودی مینوی دادار اورمزد رایومند خروه به خوشنودی مینوی اورمزد عباگاه سدی ویس پیشام به خوشنودی مینوی وحمن و ماه و گوش و رام به خوشنودی مینوی اردی بهشت بلند و آزر و سروش و رحرام به خوشنودی مینوی شهریور و خور و مهر و آسمان و انارام انقل روشنگاه خدا خوشنودی مینوی سپندار مزد و آبان و دین و ارد و منترسپند خوشنودی مینوی خرداد و تشتر و باد و فروردین خوشنودی مینوی امرداد و رشن و اشتاد و زامیاد خوشنودی مینوی هاون و رپیتون و و عیبی سرطرم و گوشهینگاه باد به خوشنودی مینوی گاه گاتا بیو احنود، گشتود، سپن تمد وحوخ و بهشتو ایش باد به خوشنودی مینوی هومی زد برزی زد، نیرو دهمان و وحان آفرینیزت با. به خوشنودی مینوی گاه گاهانبار میدی و زرمگاه میدی و شمگاه پیت شهینگاه عیاس میدیارینگاه همست پت میدینگاه با به امروز روز فیروز و فرخ روز در اینجا امروزی که هست امروز میکنم ار روز ارمه ماه خجسته ماه آذر کاه ایوی سروترم برساد پسند و پذیرفته دادارون کام باد کامه ای باد ایدون باد ایدون ترش باد اشنه هوهش تمزی هوش تا وستی هوش هو تا یاد شای اش بسیار هم نیکو خوب پس ما را به یک برک موزیک مهمان می کنید و ما دوباره خدمت شما برمی حاله با سپاس، خب، خدمت شما هستیم و ببینیم که پرسشایی که این بار اومده دوستان پرسیدند چه پاسخی میتونه از سوی من دست که داشته باشه؟ خب در این زمانی که گوش میکردیم به موسیقی من به پرسشا نگاهی میکردم خب پرسشا باز حالا بگم پیوند مستقیمی با آنتی که گفته شد ندارد و خب از شیوه نگارشم بر حال پیداست دوستی که اینو پرسیدن یا اینکه خب به دین بهی آنچنان وارد نیستن یا بر حال به چیز یه درد درشون بود پرسیدند؟ من پرسش ها رو میخونم و بعد یک پاسخ کلی بهش میدم. ایشون این نوشتن. نوشتم. آیا انسان باید فقط به زندگی قبل از مرگ داشته باشد یا بهتر از انسان هم به, زند... به زندگی... هم به زندگی قبل از مردن و هم به زندگی پس از مرگ متقب باشد. گویا انسان از خاک آفریده شده است. پس آب و باد و آتش موجود در جسم و کالبد انسان چه می شود؟ و همینطور روح. آیا می توان روح را یک حقیقت و جسم متافیزیکی نام نهاد که ازلی و ابدی باشد و روح پس از مرگ انسان به ترقی و پیشرفت خود در کل عوالم روحانی جاودان و تا به اول ادامه خواهد داد هایا درست است که دین علم متافیزیک هست و علم دین فیزیک می باشد و جایگاه علم جایگاه علم متافیزیک خالب می باشد و جایگاه علم فیزیک مفت می باشد دوست گرامی بذار اینجوری بگم اول اینکه از شما گفتید که گوده انسان از خواهد کافایی شده، پس آب و باد آتش کجا هستند؟ در حالی که،, که در از دید ما و دید دینه به هیچه نیست همه جا گفته شده بارها بارها تکرار کردم و همه میدانیم که همیشه من میگویید چار آخشیچ چار انصر چار ایلمنت که هر همین تا داشتن که شما نام بردید کی گفته که انسان فقط از خواه کافیلش ده و به طور گلی دیدگاهه حتی آفرینشیه نشیه زرتشتی فرق داره با آن شیوه‌ایی که در عدیان دیگر اومده و انسان از خاک در آغاز درست شد و اینا در صورت که ما اینجوری نگاه نمی‌کنیم به تور کنیم پس همه این آخشیچ‌ها، مطعاً ها در ما، در همه آفرینش وجود دارد. و این که حالا آن چیزی که شما روح نامیدیم که ما روان می‌نامیم که قبل هم به عنوانش گفته گوی کردم ببینید من اینجوری پاسخ من چنین هست که برای باور شما میگوی انسان باید چنین باشد باید باورده شد یا بهتر است که به آن هم باور داشته باشد این به خود شما برمیگرده پاسخ که من بدم با باوری که شما دارید میتونه پیوند داشته باشه میتونه نداشته باشه حال این دوست ما که این پرسش رو کرده یا هر کسی دیگری که پرسش باوری دارد خب باور به پس از مرگ زندگی پس از مرگ باوره به ادامه روان باز هم من همون پاسخ همیشهگی نومیدم میگم که از دید دین بهی روان وجود دارد و پس از مرگتن روان اگر بخوایم بگیم به روانگی و به رفتن ادامه میدهد باور من بر این است که روان به جا میمان و آری به گونه‌ای به پیشلخت خودش ادامه میدهد. دوست دیگری پرسیدن آیا فراوهر همان فیرهای ستودنی و بالاست هم به گونه‌ای می شود گفت آری هم به گونه‌ای اگر به ویمندی یا تعریف دین از فراوهر بازگردیم خواه فراوهر گفتم دانه ایست آن بخشی از اهورا مزده هست بخواییم بگیم که درون همه هست و اگه یادتون باشه از اندیشه سخن گفتم که به گونه باز همون است. یعنی آن دانه است که باید بروید و به بالد و با خود منش بیاورد و پیشرفت بیاورد خب به گونه این فکرها یا اندیشه های و بالایی که شما میفرمایید اگر شوه یا سبب پیشرفت انسان بشن پیشرفت منشی و روانی انسان و بینشی انسان بشن آره می شود گفت که می شود را هم فرا و پرسش دیگری که آمده می شود بفرمایید زمانه به وجود آمدن خط دیدنگره چه زمانی بوده برخی می خود تعشوزرتاش توش خط به وجود آوردن و برخی می در زمان ساسانی هم به وجود آمده خواهش من برای ما توضیح دید دوست من پاسخ من هم به جز این نمی باشد. باشم چون این چیزهایی که بر میگرده در تاریخ به گذشته ای که ما به هر روی طبیعتا ولی شوربختاره نمیتونیم یک چیز مشخصی دارش بیاریم ثابت کنیم که چنین است یا چنان است به گونه ای همیشه در این دوگانگی میمانه خب در جاهایی و آن چیزهایی که باقی مونده در نوشته ها دفترها ها چیزهایی که باقی مونده در بخش هاییش خب از نوشته شدن... نگاشته بودن ابستا برده ازار پوست گاف سخن رفته منم پاسخ دیگری نمیتونم بدم بیچی رو صد درصد نمیتونم بگمتونم که به راستی در زمان خود عشوزتوش دبیرهی بوده نبوده ولی از قرار آن دین دبیره دسته کم و چند دین دبیره های دیگر در زمان ساسانیان اگر هم بخوایم بگیم در اون زمان درست نشد ولی تکمیر شد و به شکل درستی در آمد ولی به گمانم دست کم ساسانیم خیلی روی این مسئله کار کردن و اگر در زمان خود اشوه هم میتونستن بنویسند شاید چون این بوده من نمیتوانم صد درصد پاسخ بگویرم در این زنده به هر روی براتون روسا و شبهای خوشی رو آرزو دارم اموزواریم که بره ها برای کسایی که می‌خواستن گوش بدن سودمند مفید بوده باشه امچیل گفتم بخش نیایشایی هست در تانما با این بهشی و هم سعی می‌کنم یه خود جونجورش کنم و بذارم در تانما که کسایی که می‌خوان برای آموزش گوش بدن بتونم دوباره گوش بدن با همتون به درود میگم و اهورا مزده خداوند جان خیلیت می و آرزوی تندرستی، بهروزی، شادکامی دیرزی و بهزیبی برای همه دارم شب خوش تا درود دیگر وجود. اندیشه و گفتار و کردار اشوزر خوشت الهانیست از اهورا مزده ای جاودانهای پاک گات‌ها را فراپذیری درود بر شما ای سرودهای پاک اندیش بر من میتازد جز تو چی کسی مرا نگهبان است و جز فروغ تو و اندیشه به تو که انجام آن پاکی و پارسایی است چه چی چیز مرا پاسداری میکند ای مزدا آن دستور دینی که پاسداری و نگهبانی تو را به من ارزانی می دارد به من بازگوی و آنچه مرا در این راه پیروزی می بخشد به من بیا، ای مزده آن نیروی جهانی و مینوی که در پرتو اندیشه نیک آدمی را به سوی تو و خاست تو فرامی خاند بر من آشکار ساز با فروزهای پاکی دل و محر و پارسایی ما را از گزند بدخواهان برهان اشتاد شمور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 تا هنجار آفرینش را پاسدار باشد تو را ستایش می کنم ای مزدا احورا که بر همه چیز آگاهی که به فروهر پاک عشوزرتوشت چنان ویژگی و توان بخشیدی تا با خرد خدادادی نیک بودن درست زیستن و مهر ورزیدن را به مردم بیاموزد